ازیزان، این خیلی راحته با کسانی که ماهی یک بار ما رو میبینن یا صدای ما رو میشنون یا حتی یک بار در عمرشون ما رو میبینن مهربون باشیم. اما با کسانی که یک عمر هر روز ما رو میبینن چطور؟ در کلاس امروز دانشکده کتاب مقدس معلم ما دوباره ما رو به کتاب افسوسیان میبره تا به ما نشون بده چطور میتونیم مسیحی بودن خودمون رو در ارسه سخت زندگی اعمال کنیم دوستان به کلاس دیگری از دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش اومدید پولس به ما تعلیم میده که زن و شوهر مسیحی تصویری رو به جهان ارائه میدن این تصویر محبت مسیح به عروسش کلیساست و احترام و سرسپردگی کلیسا برای مسیحه این یک توصیه خیلی قوی و کاربردیه پس با هم به این تعلیم کاربردی گوش می‌کنیم. اگر کتاب مقدس همراهتون هست، نامه پولس به افسوسیان رو باز کنید. همونطور که بارها تاکید کردم، باز هم تاکید می‌کنم که یک بررسی فقط یک مقدمه یا یک مرور کلی یا راهی هست که به شما دیدگاهی از نامه پولس به افسوسیان میده. شما میتونید بقیه عمرتون رو بر روی این نامه تعمل کنید. میتونید کتاب افسوسیان رو آیه به آیه عبارت به عبارت بخونید و به کلمه هایی که پولست در این نامه سمیمانه برای ما نوشته تعمل کنید. به عنوان شبان، من به مدت دو سال هر یک شنبه سباب اول کتاب افسوسیان رو موعظه کردم. گفتیم که کتاب افسوسیان شش باب داره. سباب و نیم اول آموزشی و عقیدتیه. اونها اساساً درباره باره کلیسای ایسای مسیح به ما آموزش میدن. اونها کلیسا رو به عنوان معجزه خدا معرفی میکنند در شانزده آیه اول باب چهار، پولس ماهیت، طبیعت، وظیفه و هدف کلیسای ایسای مسیح رو به ما معرفی میکنه بعد پولس بخش کاربردی نامه را آغاز میکنه و همونطور که اغلب در نوشته های پولوس به نظر میاد که هرچه بخش تعلیمی امیغ تره، بخش عملی نامه هم کاربردی تره. این سباب و نیم اول تعلیمی احتمالاً عمیق‌ترین هایی هستند که پولس نوشته و باب های عملی هم خیلی کاربردی هستند پولس به ما میگه که لباس بپوشیم او به ما میگه که باید لباس مندرس زندگی قبلیمون رو در و ردای زندگی جدیدمون رو بپوشیم به گفته پولس ما باید در محبت گام برداریم باید به عنوان فرزندان نور گام برداریم در روح گام برداریم با احتیاط گام برداریم و به عنوان ایمانداری گام برداریم که در بعد آسمانی در مسیح به عنوان بخشی از کلیسای عیسی مسیح زندگی میکنه پولس به لباسهای جدید و قدیم ما برچسب میزنه لباسهای کهنه زندگی قبل ما چیزهایی مثل دروغ و خشمه لباسهای زندگی جدیدمون هم مثل صداقت و محبت به همدیگه است اینجاست که پولس تعلیم بزرگی به ما میده پولس به ما میگه خدا افرادی با اتیه به کلیسا داده. خدا افرادی مثل شبانان معلم، شبانانی که به نه احسن تعلیم میدن تا مقدسان رو برای کار خدا آماده کنن داده. در آیه دوازدهم از باب چهار پولس جمله بزرگی اظهار کرده. این حقیقت باید بر فلسفه خدمت شبانان امروزه تأثیر بذاره. این آیه در افسوسیان باب چهار آیه دوازده احتمالاً بیش از هر آیه دیگری که در درخت جدید نوشته شده بر روی فلسفه خدمت من تأثیر گذار بوده این آیه به ما میگه که خدای قادر مطلق کار خدمت رو برای افرادی که عوام نامیده میشن در نظر گرفته وقتی که پولس از کلمه مقدسین استفاده میکنه منظورش افرادیه که به عنوان ایماندار در کلیسا هستند به گفته پولس شبان معلم یک مربیه، ولی افرادی که توی کلیسا هستند افرادی که بهشون عوام میگیم تیم اون مربی رو تشکیل میدن افرادی که توی کلیسا هستند کنان تیم هستند کار خدمت واقعا در جلسات روز یکشنبه در ساختمان کلیسا انجام نمیشه وقتی دعای آخر جلسه تموم میشه تازه کار خدمت آغاز میشه به گفته پولوس وقتی این مقدسین کلیسا رو ترک میکنند کار خدمت به اونها واگذار میشه باید به خاطر بسپاریم که یک شبان باید افراد آمی رو تجهیز کنه آماده و تقدیس کنه و با اونها آموزش بده بهشون الهام ببخشه و اونها رو به چالش بکشه تا کار خدمت رو انجام بدن این عامل بسیار مهمی در طبیعت وظیفه و هدف کلیساست. وقتی که پولوس باب پنج رو می نویسه ما میبییم که قسمت کاربردی این باب زیبا در جایی شروع میشه که خیلی سخت هست یعنی در خونه پولس ایمانداران رو تشویق میکنه که در بود آسمانی باشد جایی که میتونیم تمام چیزهای مورد نیاز برای زندگی در تولد تازه و به عنوان شاگردان ایسای مسیح که تحت کنترل روح القدس هستند رو پیدا کنیم. در ابتدا وقتی که مردم شاگرد ایسا میشن، اونها میخوان که توی شهر برن و مجده نجات رو فریاد بزنن، یا اینکه میخوان به زندانها برن یا به بقیه کلیسه ها برن و ایمان خودشون رو با اونها در درمیون بذرن. آخرین جایی که اونها میخوان زندگی جدیدشون در مسیح رو اعمال کنن، خونه است. پولس به ما میگه که خونه ما اولین جایی که باید سمره روح القدس زندگی در مسیح رو در اونجا اعمال کنیم. این دعا به عنوان یک شبان قلب منو لمس کرد. به این دعا بزرگترین آزمون میگن و این طور شروع میشه. ای خدا کمکم کن آنچنان نزدیک به تو گام بردارم تا اونهایی که منو خوب میشناسن ببینن من اونطور که ادعا میکنم کنم خدا پسندان زندگی میکنم و مسیح هر روزه برای من واقعیت داره من بعضی ها رو روزی یک بار یا سالی یک بار می بینم. برای اونها شاید من آدم بیعیبی بی به نظر برسم چون خیلی راحت با کسانی که به ندرت ملاقات میکنم کنم مهربون و ملایم باشم اما در خانه کسانی هستند که بدترین چیزهای منو می بینن. اگر تو زبان منو در خانه کنترل نکنی سرودهای پرستشی من ناخوانده خواهند ماند وقتی من خشمگینم یا خستم ام رو نمیتونم پنهان کنم دعا میکنم چون اونها نمیتونن محبت تو رو در من ببینن دوچار لغزش نشم بلکه خدایا به من زندگی بده تا بتونم پرستش کنم و بر تمام چیزهای کوچک پیروز بشم آرامش خودت رو بده تا بتونم بر ترس ها غلبه کنم آرامشی که تسلی عشقهای من باشه. خدایا مرا خودم بساز. در نزاها آرامم کن، بخشنده و فروتنم کن. کمکم کن تا بهترین باشم و برای مسیح در آزمایش پیروز باشم. این دعای بیشتر شبانها هست. این دعای بیشتر پدران و مادران ایمان داره. چرا خانه جای سختیه؟ برای اینکه که خانه جایی هست که ما خودمون هستیم. جایی که دیگه ماسک به چهره نداریم. ما یک چهره من رو به دنیایشون میدیم و چهره ی دیگه من رو به افرادی نشون میدیم که باهاشون کار میکنیم. یک چهره می من رو به دوستان نشون میدیم و اغلب خود واقعی من رو به خانوادهمون نشون میدیم. وقتی که ما به خونه میاییم و در رو میبندیم، تازه اون موقع خودمون میشی. خونه جایی که شما واقعا خودتونید و زندگیتون جایی که چهره واقعی مسیح باید در شما دیده بشه و به این دلیل که پولس بخش کاربردی نامش رو در خونه شروع میکنه پولس مینویسه همدیگر را در خدا ترسی اطاعت کنید ای زنان شوهران خود را اطاعت کنید چنان که خداوند را زیرا که شوهر سر زن است چنان که مسیح نیست سر کلیسا و او نجات دهنده بدن است لکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح است همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری مطی باشند ای شوهران زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد تا آن را به قسل آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هر چیز مثل آن نداشته باشد بلکه تا مقدس و بی‌عیب باشد به همین طور باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید خیشتن را محبت می مینماید زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته بلکه آن را تربیت و نوازش می میکند چنانکه خداوند نیز کلیسا را پولس در این تعلیم در مورد ازدواج زیباترین مشورت در مورد ازدواج را به ما میده که در کتاب مقدس پیدا میشه پولس به ما میگه که زنان باید تسلیم شوهران خود باشند و در تمام چیزها به اونها وفادار باشند. پولس به زنان میگه که بایستی به شوهران خودشون احترام بذارن. این برای خیلی از زنها سخته به این دلیلی که بعضی از زنها میگن از پولس خوششون نمیاد و نوشته های او رو دوست ندارن. با این حال اگه شما واقعا چیزی رو که پولس میگه درک کنید همونطور که قبلا دیدیم متوجه میشید که پولس مقام زن رو بالا میبره. انجیل مسیح همواره جایگاه زنان رو بالا میبره. پولس تنها به زنان نمیگه که باید به شوهرشون گوش بدن و فقط اطاعت کنن. نه. او فقط این رو نمیگه. بلکه این رو هم میگه که شوهران باید زنهای خودشون رو محبت کنن. ای شوهران، زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد. شما نمیتونید که دو افسر فرمانده داشته باشید. در یک کشتی یا یک هواپیما حتما باید یک فرمانده وجود داشته باشه کسی که احساس مسئولیت بکنه فرمانده که یک هواپیمای بزرگ را هدایت میکنه مسئولیتش رو به کسی واگذار نمیکنه اما به دیگران اختیار میده اگر اشتباهی پیش بیاد این فرمانده است که باید در مقابل هیئت تحقیق پاسخگو باشه بر اساس ساختار فرماندهی شخص فرمانده نمیتونه تمام یا بخشی از مسئولیتش رو به شخص دیگری واگذار کنه اگرچه او به دیگران وظایفی محول میکنه اما همه چی تحت مسئولیت او قرار داره وقتی که پولوس میگه مرد سر زنه چیزی که واقعا میگه اینه که مرد نسبت به زن و هر چیز دیگه‌ای که در ازدواج خانوادهش وجود داره مسئوله اون مرد مسئولیت بزرگی داره خدا مرد رو موظف کرده که در هر عرصه از خانه پاسخگو باشه اگر چیزی در مورد مسائل مالی خانه درست نیست، اگر چیزی در مورد بچه ها و تحصیل اونها درست نیست یا هر بخش دیگه از خونه، این مرد که باید به خدا پاسخ خوب باشه. این خیلی مهمه که مردان بدونن خدا اونها رو مسئول تمام مسائل خانواده کرده. به این دلیل که خدا میخواد زنها کار رو برای مردان خودشون آسون کنن، چون یک مرد مسئولیت بزرگی داره. پولوس به زنان میگه شما بخشی از مشکل نباشید، بلکه بخشی از راه حل باشید. زمانی که میگه از او اطاعت کنید، او واقعا داره میگه شوهر شما برای این طراحی شده تا برای شما طوری باشه که مسیح برای کلیساست و شما طوری طراحی شدید که مثل کلیسا برای مسیح باشید. مدلی که کتاب مقدس از ازدواج به ما ارائه میده، رابطه مسیح و کلیسا هست. پتروس در اول باب سوم پتروس و پولس در افسوسیان میگه لاکن همچنان که کلیسا مطیع مسیح هست، همچنین زنان نیز شوهران خود را در هر امری مطیع باشند پولس بعد به مردان میگه ای شوهران زنان خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد تا آن را به قصد آب به وسیله کلام طاهر ساخته تقدیس نماید تا کلیسای مجید را به نزد خود حاضر سازد که لکه و چین یا هیچ چیز مثل آن نداشته باشد، بلکه تا مقدس و بیعیب باشد. به همینطور، باید مردان زنان خیش را مثل بدن خود محبت نمایند، زیرا هر که زوجه خود را محبت نماید، خیشتن را محبت می نماید. زیرا هیچ کس هرگز جسم خود را دشمن نداشته، بلکه آن را تربیت و نوازش می کند. چنان که خداوند نیز کلیسا را حالا کی ماموریت سنگین تری داره کسی که باید مثل یک گوسفند و کلیسا باشه یا کسی که باید مثل مسیح باشه که شبان اعظم کلیسا این مسئولیتیه که به مردان داده شده تا تمام مسئولیت خانه رو بر دوش بکشن ماموریتی که به مردان داده شده اینه ای مردان دیدید مسیح چطور کلیسا رو دوست داشت دیدید که بر روی صلیب به خاطر کلیسا مرد بسیار خوب شما باید همان طور زنانتون رو محبت کنید که مسیح کلیسا رو محبت کرد. حتی جان خودش رو بر روی صلیب به خاطر کلیسا داد. یه روز که سعی داشتم نگاه عمیق‌تری به این کلمه ی همان طور بندازم، در زبان یونانی به اون نگاه کردم و به این معنی رسیدم. دقیقا مانند همون. پس دقیقا مانند اونی که عیسی کلیسا رو دوست داشت، شوهران هم باید زنان خودشون رو دوست بدارن. این مفهوم در این معنی هم صدق میکنه یعنی اینکه دقیقا همونطور که مسیح خودش رو برای کلیسا داد شما هم باید خودتون رو برای زنتون فدا کنید به عنوان یک شوهر و پدر خانواده خیلی وقتا با این احساس به خونه اومدم که چیزی ندارم به اونها بدم من تمام ته روز رو به عنوان یک شبان مشورت دادم و رک و پوسکنده بگم توی خونه دیگه انرژی نداشتم من احساس یک اسفنج رو داشتم که اون رو چلوندن و کاملا آبش رو کشیدن و حالا نیاز داره که دوباره آب جذب کنه. از طرفی اسفنج بزرگ دیگه ای رو هم میدیدم که سر اجاق مشغول تهیه غذا هست و او هم منتظر تا دوباره آب جذب کنه. من به این آیه فکر می کردم ای شوهران زنان خود و خانواده خود را محبت نمایید چنان که مسیح هم کلیسا را محبت نمود و خیشتن را برای آن داد. می دونستم که آیه اینه. شوهران خودتون رو به زن و فرزندانتون بدید، همونطور که مسیح خودش رو به کلیسا داد. اما مشکل اینجا بود که من احساس می کردم دیگه چیزی ندارم که به اونها بدم. اشتیاق طبیعی من این بود که به بچه ها کمی پول بدم و اونها رو به فروشگاه بفرستم تا برای خودشون بستنی بخرم و خودم برم و روی تخت بیفتم و روزنامه بخونم. جسم من بدون کمک خدا کاری جزی نمی تونه بکنه. اما معمولیتی که از طرف خدا به من داده شده اینه همونطور که مسیح خودش رو به کلیسا تقدیم کرد باید خودم رو به اونها تقدیم کنم باید همونطور که مسیح کلیسا رو محبت می من من همونها رو محبت کنم در انتهای باب پنجم متا، عیسی خطاب به تمام پدران میگه پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است وقتی همه اینها رو کنار هم بگذارید و همینطور مسئولیتی رو که به مردان داده شده ملاحظه کنید که میگه محبت کنید همانطور که او محبت کرد، ایثار کنید همانطور که او ایثار کرد و خودتون رو فدای همسر و بچه هاتون کنید همونطور که او فدا کرد، میبینید که این یک مسئولیت سنگینیه که به پدران و تمام مردان داده شده و باید این مسئولیت رو درک بکنند. به عنوان یک زن و مادر، اگه شما با مردی زندگی میکنید که عطیه داره چون او در مسیح و در جایهای آسمانی زندگی میکنه اگه شما با مردی زندگی میکنید که عطایای روحانی داره او باید شما رو دوست داشته باشه همونطور که مسیح کلیسا رو دوست داشت اگه شما با مردی زندگی میکنید که خودش رو وقف شما و بچه هاتون کرده و همونطور که مسیح خودش رو تقدیم به کلیسا کرده نباید از اینکه او شما رو شبانی میکنه بیزار بشی اگه شما واقعا با چنین مردی زندگی می‌کنید، باید بذارید که اون مرد سر خونه باشه و کسی باشه که مسئولیت خونه رو بر عهده داره. طی سال‌های متمادی بعد از مشاوره‌های ازدواج به زوج‌ها به این نتیجه رسیدم که بزرگترین مشکل ازدواج زوج‌های ایماندار این نیست که زن‌ها نمی‌تونند از شوهرانشون اطاعت کنند. مشکل بزرگ مردانی هستند که این مسئولیت رو قبول نمی‌کنند که سر خانواده باشن. یا اینکه مسئولیتی که خدا به دوش اونها گذاشته رو قبول نمیکنن. بزرگترین مشکل ازدواج که امروزه شبانان با اون مواجهند مردانی هستند که مثل عیسی محبت نمیکنه. مثل عیسی ایسا ایثار نمیکنن و مثل عیسی خودشون رو وقف زن و بچه‌هاشون نمیکنن. ها زن و مادر در تمام دنیا هستند که این مسئولیت رو قبول کردن. اونها چیکار میکنن؟ اونها کاری رو انجام میدن که وظیفه شوهران و پدران هست. اونها باید این مسئولیت رو قبول کنند که به بچه هاشون محبت کنند همونطور که خدا فرزندانش رو محبت میکنه اونها مجبورند این مسئولیت رو قبول کنند که خودشون رو به بچه هاشون وقف کنند همونطور که خدا خودش رو به کلیسا داده. اونها این کار رو انجام میدن چون شوهرانشون پدر فرزندانشون از این مسئولیت شانه خالی کرده و بچه ها و زنش رو رها کرده و رفته به این ترتیب نقشه زیبای خدا که در اون دستوراتی به زوج روحانی داده شده، انجام نمیشه و این باعث مشکلات زیادی میشه. من شما رو به چالش میکشم. شما مردان مسئولیتی رو که خدا به طور شفاف در مورد ازدواج به شما داده بپذیرید و به اون عمل کنید. از خدا بخواید تا قدرت و فیضی مثل مسیح به شما عطا کنه. این چیزیه که باید بهش فکر کنید و در موردش دعا کنید. در باب پنجم از کتاب افسوسیان، پولس یک نقشه کامل جامع و زیبا رو برای ازدواج زنان و مردانی که پیرو ایسای مسیح هستند راه میکنه. دوست دارم این نقشه پولس رو براتون خلاصه کنم. من یه چوب کند کاری شده ی زیبا دارم که یکی از دوستان خادمم اون را از آفریقا برای من آورده. این چوب کند کاری شده نشانگر اینه که خدا زن و مرد رو طوری طراحی کرده که یک تن باشن. این قطعه که از یک تکه چوب ساخته شده کنده کاری شده یک زن و مرده از طرف چپ به راست مرد و زن توسط زنجیری که پنج افت حلقه داره با هم متصل شدند. این مرد و زن هر کدومشون یه حلقه دور سرشون دارند که توسط زنجیر به هم وصل شده و نشون میده که این دو یکی هستند. ماته یه بررسیمون از کتاب مقدس میدونیم که خدا دو شریک ازدواج رو طوری تراحی کرده که یک بدن باشند خب مفهوم این که این دو یکی باشند چیه مسیح تعلیم داده که وقتی خدا ازدواج رو تراحی می کرد، او طوری این رابطه رو تراحی کرده که این دو نفر در روح یکی باشند در ذهن یکی باشند و اون اتحاد رو با یکی شدن جسمانی نشون بدن این تصویریه که توسط این کندکاری زیبا بیان شده واقعیت اینه که مرد و زن از طریق سرهاشون با هم متصلند که این واقعیت رو نشون میده قبل از اینکه اونها بتونن یکی بشن اونها باید با مسیح یکی بشن و از طریق مسیح با خدا یکی بشن به عبارت دیگه اونها باید بدونن که باید در مسیح در جایهای آسمانی زندگی کنند. در اونجاست که برکات آسمانی به اونها داده میشه تا بتونن اون پویایی لازم رو برای اتحاد داشته باشن که در راستای نقشه زیبای خدا برای ازدواج اونها و خانواده ای هست که با ازدواج اونها تاسیس میشه. در واقع براساس این تصویر که توسط این کندکاری داده میشه، روابط اونها اگر قوی باشه یا نشان نشاندهنده رابطه اونها با مسیحه. این واقعیت که حلقه های زنجیری که اونها رو با هم متحد کرده جفت جفت هستند، نشاندهنده این حقیقته که عوامل ازدواج اونها یکیه، ولی دو جهت و دو سمت داره. ما باید اولین حلقه اتصال که سرهاشون رو به هم متصل کرده رو رابطه روحانی بنامیم. رابطه روحانی پایه و اساس یگانگی زن و مرده. همونطور که از چپ به راست میبینیم زنجیر بعدی رابطه است. خیلی از زوچا هستند که به شبانانشون میگن ما با هم رابطه نداریم. این حقیقت نداره. چیزی به نام نداشتن گفتگو و رابطه وجود نداره. اما فرقشینه که روابط شما چیه و چطوریه. حتی اگه شما حرف نزنید باز هم رابطه دارید ولی رابطه شما چیه و چطوریه یه بار از یه خانم در مورد شوهرش شنیدم که شوهر آرومی داشت. او میگفت حتی اگه شوهرم حرف نزنه من میدونم او چی میگه وقتی که شما در مورد ارتباطات مطالعه میکنید میتونید نتیجه بگیرید که ارتباطات ابزار یکدلی و یگانگیه ارتباطات ابزاریه که با اون میتونید یگانگی رو در ازدواج حفظ کنید اگه شما ارتباط خوبی داشته باشید ابزاری دارید که میتونید روی مشکلاتتون کار کنید اگر ارتباط خوبی نداشته باشید درمانده میشید نمیتونید مشکلاتتون رو حل کنید مشکل ارتباطات مثل باکتری عمل میکنه باکتری ها در تاریکی تکثیر میشن ولی در نور نمیتونن کار کنن وقتی که شما ارتباط دارید مثل اینه که چراغ را رو روشن میکنید و باکتری ها میمیرن و اونهایی که میتونید می باهاشون مبارزه کنید این حقیقته که اگر شما بخواهید میتونید ارتباط داشته باشید، اما اگه نتونید ارتباط داشته باشید، مشکل ارتباطات مرتبا اضافه و اضافه میشه مثل باکتری ها که در تاریکی عمل میکنه. زنجیری بعدی که از سمت چپ به سمت راست وصله سازگاری هست. سازگاری به چیزی مثل ارزشها بستگی داره. سازگاری دلیل سلامت یگانگیه. بعضی وقتا تعجب میکنم چطور دو نفر با هم دیگه زندگی میکنن چون بعضی از زوج‌ها این طور که به نظر میرسه هیچ چیز مشترکی ندارن اونها ارزش‌های مشترکی ندارن اهداف مشترکی ندارن و شیوه زندگی مشترکی هم ندارن به عنوان یه شبان خیلی مواقع نمیتونم کمک کنم ولی از اونها میپرسم شما چطور با هم زندگی میکنید در یک ازدواج ایدئال شما میتونید سازگاری رو در خیلی از سطوح ببینید که نشاندهنده و دلیل یگانگی درون ازدواجه. زنجیر وسطی در این زنجیرهای پنجگانه محبته. از دید کتاب مقدسی این محبت از جنس محبتیه که پولس اون رو در اول قرنتیان باب 13 توصیف کرده. اون محبت آگاپه هست. اون فناناپذیر توصیف شده چون اون محبت بدون قید و شرطه. این محبت محکم و استواره چون الهام گرفته است. محبت آگاپه بدور از خودپرستی و بدون قید و شرطه. محبتی که کتاب مقدس به ما میده میتونه دو نفر رو تبدیل به یک بکنه یکی از دلایلی که ازدواج ها به هم میخوره اینه که مردم خودپرست هستند اونها واقعا یاد نگرفتن که مسیح رو مرکز وجودشون قرار بدن اونها به ازدواج اینطور نگاه میکنند که چه چیزی برای من داره اگر هر کدام از اونها وارد رابطه میشن به این دلیله که بتونن چیزی به دست بیارن ولی در واقع چون اونها هر دوشون به این فکر میکنن هیچ چیزی آید هیچ کدام نمیشه. اونها باید آیه ای رو که یکی از تعالیم مسیح هست درک کنند که فرمود دادن از گرفتن فرخنده تر است. این کلماتی که ایسا از اونها استفاده کرده باعث میشه در بینش زوجها در مورد محبت آگاپه انقلابی ایجاد بشه و باعث یگانگی اونها میشه. محبت آگاپه محرکه یگانگیه. زنجیر بعدی زنجیر تفاهم هست. درک کردن باعث رشد یگانگی میشه روانپزشک سوئیسی دکتر پل تورینر در کتاب زیبای کوچکی تحت عنوان همدیگر را درک کنیم نوشته اگر میخواهید با هم تفاهم داشته باشید باید اهمیت تفاوت‌های بین دو جنس را درک کنید چیزهای زیادی در این کتاب هست که باید درک کنید اما نصیحت و تشویق این کتاب اینه همدیگر رو درک کنید با تفاهم زندگی کنید پتروس به شوهران میگه و شما نیز شوهران باید رفتارتان با همسرتان همیشه با ملاحظه باشد و چون آنها جنس لطیف هستند و در فیض و حیات با شما صحیم و شریک میباشند با عزت و احترام با آنها رفتار کنید مبادا دعا دعاهای شما مستجاب نشود به عبارت دیگه میگه اونها رو درک کنید درک کردن باعث رشد یگانگی میشه آخرین حلقه زنجیر که این زن و مرد رو به هم وصل میکنه رابطه جسمانیه آخرین چیز که در یک رابطه باعث یگانگی میشه، رابطه جنسیه. رابطه فیزیکی بین این مرد و زن نوعی از ارتباطه. رابطه زناشویی ترین فرم ارتباط هست که مرد و زن میتونن تمام این زنجیرها رو به عنوان عامل یگانگی نشون بدن. حالا یه بار دیگه این زنجیرها رو به طور خلاصه مرور کنیم. زنجیر بالایی که در قسمت سر بود اسمش رابطه با خدا هست. یا یگانگی روحانی که پایه و اساس یگانگیه. زنجیر بعدی ارتباطه که ابزار حفظ کردن یگانگیه زنجیر بعدی سازگاری گواه این هست که شما یگانگی دارید محبت محرکی یگانگیه درک کردن باعث رشد یگانگی میشه و رابطه جنسی تجلی شادی یگانگیه وقتی که مشکلات جنسی وجود داره دلیلش این نیست که مشکلات جنسی بیشتر برای این اتفاق میفته که زوج‌ها نیاز به درمان یا اطلاعاتی در این زمینه داره مشکلی نیست که اونها نیاز دارن تا یک کتاب دیگه در مورد روابط زناشویی بخونن دلیل اصلی مشکلات جنسی اینه که اونها میخوان تجربه شادی از یگانگی داشته باشن اما ندارن به این ترتیب برای اینکه رابطه جنسی شادی داشته باشید باید رابطه شما تجربه شادی از یگانگی باشه اگه شما پیوند های رو نداشته باشید جای هیچ تعجبی نیست که پیوند جنسی شما بی حاصل و خالی باشه پولوس در باب پنجم تعلیم بزرگی در مورد رابطه بین زن و مرد به عنوان بخشی از قسمت کاربردی نامه خودش و به افسوسیان بماداده این قسمت رو با قسمت‌های دیگر کتاب مقدس که در مورد ازدواج نوشته شده مقایسه کنید خواهید فهمید که نقشه خدا برای زن و مرد در رابطه ازدواج چیه این پایه و اساس خانه است که مهمترین نهاد در دنیا هست تصویر دیگه رابطه روحانی در ازدواج شکل مثلث داره تصویر یک مثلث که مرد و زن زوایای کناری مثلث هستند و خدا زاویه بالاییه هرچقدر که اونها به خدا نزدیکتر هستند به خودشون هم نزدیکترن این نشان دهنده رابطه روحانی در ازدواجه علاوه بر تأکیدی که پولس در باب 5 و 6 بر روابط بین زن و شوهر داره او به ما میگه این حقیقت میتونه در رابطه بین بردگان و عربابان و بالعکس نیز صدق کنه. حالا خیلی از ماها امروز برده نیستیم و شاید بتونیم این بخش رو اینطور بیان کنیم که تمام حقایق زندگی مسیح گونه که پولس در نامه خودش به افسوسیان گفته میتونه بین کارمندان و کارفرمایان و بین کارفرمایان و کارمندان به کار گرفته بشه. تمام این تعلیمات صمیمانه که پولس در کتاب افسوسیان اونها رو بیان کرده باید در تمام سطوح زندگی ما به کار گرفته بشه فرزندان هم باید این تعالیم رو در رابطه خودشون با پدر و مادرها به کار ببرن و والدین هم باید تمام این تعالیم رو در رابطه خودشون با بچه ها به کار ببرن به عبارت دیگه پولس میگه تمامی این هایی رو که من به شما تعلیم میدم باید در رابطه با نزدیکترین کسانی که با شما هستن به کار ببرید اگر شما متعهل هستید اینها رو در رابطه با شریک ازدواجتون به کار ببندید اگر جوانی هستید که هنوز ازدواج نکردید این تعالیم رو در رابطه با والدینتون به کار ببرید اگر شاغل هستید این رو در رابطه با افرادی که با اونها کار می‌کنید به کار ببرید ما این قسمت کاربردی نامر و لباسی برای روابط مینامیم فیلسوفی به نام رنه کارت گفته می پس هستم فیلسوفا اغلب اون چیزی که وانمود میکنن نیستن اونها همیشه به ما در این مورد میگن که شما چطور میتونید بفهمید که واقعا وجود دارید یا نه مثلا یکی از اونها گفته بودن یعنی انجام دادن کاری یکی دیگه میگه انجام دادن کاری یعنی بودن فیلسوفها همیشه چنین چیزهایی به شما میگن یکی دیگر از فیلسوفهای بزرگ میگه بودن یعنی در رابطه بودن به عبارت دیگه اگر واقعا میخواهید وجود داشته باشید باید در رابطه باشید پولوس به ما میگه تمام چیزهایی که در قسمت دوم نامه افسوسیان عنوان کرده باید در روابط ما از هر نوکی هستند به کار گرفته بشه حالا به این موضوع دقت کنید در باب ششم پولوس از جایهای آسمانی در بود منفی اون استفاده میکنه خیلی از مردم به این واقعیت اهمیت نمیدن که دنیای ارواح بود منفی و مثبت داره در اونجا ارواح خوب و ارواح شیطانی وجود دارن حولست میگه که نبرد ما نبرد روحانیه، نبرد ما با دشمن جسمانی نیست چون این نبرد خیلی آسونتره. دشمن ما در دنیای ارواهه دشمن ما اینطور توصیف شده، زیرا جنگ ما با انسان نیست بلکه ما علیه فرمان و اولیاء امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم پس تنها راهی که ما میتونیم در پیروزی زندگی کنیم اینه که بر نیروها و قدرتهای جهان تاریکی پیروز بشیم و زره خدا رو بتن کنیم و هر روزه به جنگ روحانی بر علیه این نیروها بریم. پولس وقتی نامه افسوسیان رو می نوشت در زندان بود. نامه او به فیلیپیان، به کولوسیان، فیلیمون و نامه دوم او به تیموتاوس هم از زندان نوشته شده. در اولین دوره زندان که در روم بود، پولس وقتی این نامه رو می بین دو سرباز در زنجیر بوده. پولس به ما در مورد این نبرد و جنگ صحبت میکنه از زره یکی از این سربازها به عنوان مثال استفاده میکنه او به ما میگه که باید کلاه خود نجات و کمربند حقیقت رو بپوشیم ما باید سپر ایمان رو به دست بگیریم باید شمشیر روح القدس رو به دست بگیریم که کلام خداست و نعلین ما انتشار انجیل باشه همونطور که پولس تمثیلوار لباس های اون سربازان رو به تصویر میکشه او به هر یک از قسمت های لباس اون سربازها برچسب روحانی میزنه و میگه اینها سلاحهای روحانی هستند که ما باید با اونها برای خدا در مقابل جهان بیستیم ما باید با یک پا در جهان و یک پا در جایهای آسمانی زندگی کنیم این تشویق بسیار خوبیه که به ما میگه که نبرد ما در روحه و ما باید بجنگیم نه با قدرت خودمون بلکه با قدرت روح القدس در دوم قرنتیان پولس به ما میگه که او تمام انبار این اسلحه ها رو داره که میتونه اونها رو در جنگ روحانی به کار ببره. در باب شش افسوسیان پولس به ما میگه که این انبار اسلحه روحانی در واقع چیا هستند؟ میخوام شما رو به چالش بکشم. آیا شما کلا خود نجات رو به سر کردید؟ آیا شما در درون ذهنتون میدونید که از قدرت گناه آزاد شدی؟ آیا قلب شما با جوشن نیکی محافظت میشه و کار نیکو انجام میده؟ آیا شما از سپر ایمان استفاده می کنید؟ آیا میدونید دونید که چطور با شمشیره روح القدس که کلام خدا از کار کنید؟ پس نعلینتون رو بپا کنید و پیغام انجیل رو منتشر کنید. عزیزان، لازمی تمام این حلقه های اتصال که امروز اونها رو شنیدیم یک چیزه، زره. اگه شما زره خدا رو هر روزه به تن داشته باشین، ضربات پیاپی که از این دنیا به شما وارد میشه، اثری بر شما نخواهد گذاشت ما همچنین متوجه میشیم که ما نیز به دیگران ضرباتی وارد نمی کنیم. چون زندگی ما تحت کنترل روح القدسه به عبارت دیگه بدون کمک خارق العاده خدا ما نمیتونیم اونطور که باید محبت کنیم احترام بذاریم و از خدا اطاعت کنیم ولی یادتون باشه که در مسیح میتونیم تمام اینها رو انجام بدیم ترتیبی بدی تا در درسهای بعدی در ادامه بررسی نامه پولس با ما باشید. این رسالات به ما کمک میکنه تا یاد بگیریم چطور کلام خدا رو در زندگیامون به کار ببریم.